سلام ارز می کنم، خدمت همه شما شنوندگان کانال هزار افسان. امیدوارم حالتون خوب باشه. از کتابی که مشخصاتش ذکر شد، داستانی رو بهتون تقدیم می کنم به نام یسپر خرگوش چرا. زمانی پادشاهی بود که به قلم روی بین طلو و غروب آفتاب برمان روایی می این قلم رو، مثل بسیاری از سرزمین های دیگه در دوران قدیم کوچک بود. وقتی پادشاه به پشت بوم قصر میرفت و به اطراف نگاه میکرد میتونست تا آخر مرزای قلم رو شو ببینه. اون از اینکه میدید اون سرزمین به اون تعلق داره به خودش میبالید. گاهیم به فکر فرو میرفت که اگه نباشه چی به سر کشورش میاد. اون فقط یه دختر داشت. پادشاه در فکر بود که همسری مناسب برای دخترش پیدا کنه تا پس از اون کشور حکومت کنه. اون از کجا میتونست مردی ثروتمند و باهوش که مناسب همسری شاه دخت باشه پیدا کنه؟ این مسئله ذهن پادشاهو مشغول کرده بود طوری که بیشتر اوقات شب و بیدار میموند. سرانجام نقشه ای به ذهنش رسید دستور داد ای صادر و در سراسر سر کشور پخش بشه حتی از پادشاه کشور همسایه تقاضا کرد که اون اطلاعیه رو تو سرزمین خودش پخش کنه تو اطلاعیه اومده بود هر جوونی که بتونه یک دوجین از مرباریت ها رو که تا اون زمان پادشاه ندیده بود براش بیاره و از پس کارایی که تعیین میشه بر بیاد، شاه دخت و به عقدش در میاره و پس از خودش اون به تخت پادشاهی خواهد نشست. پادشاه فکر میکرد هرکی و بیاره سروتمند فرده و کارا رو فقط کسی که گوش و استعدادی بینظیر داره میتونه انجام بده. افراد زیادی پیدا شدن تا خودشونو محک بزنن. تاجرای ثروتمند و شاهزادگان دیگر کشورها یکی پس از دیگری خودشون رو نشون دادند که بعضی روزا از بس تعدادشون زیاد بود باعث آزردگی پادشاه میشد اونا با اینکه باشکوهترین مرواریدا رو میآوردن از عهدهی انجام سادهترین وظایف که پادشاه براشون تعیین کرده بود برنیومدند بعضی هم که فقط ماجراجو بودند و هدفشون این بود که با مرواریدای مصنوعی پادشاهو فریب بدن. اما پادشاه هوشیار بود و به این راحتیا گول گل نمیخورد. پس از چند هفته از تعداد خاستگارا کاسته شد و با گذشت زمان دیگه چشماندازی از داماد مناسب به چشم نمیخورد. از غذای روزگار، گوشه‌ای از سرزمین پادشاه کنار دریا ماهیگیری بینوا زندگی می‌کرد که سه پسر داشت به نام‌های پیتر، پول و یسپر. پیتر و پول مردایی بزرگ و سرد و گم چشیده بودند اما یسپر تازه دوران جوانی رو پشت سر نهاده و پا به دنیای مردونگی می‌ذاشت. دو برادر بزرگتر قویتر از برادر کوچکتر بودند. اما یسپر از هر دو باهوش بود. حالا تو این قصه متوجه میشیم که برای سه برادر چی پیش خواهد اومد یه روز ماهیگیر به دریا رفت و میون ماهیایی که سعید کرده بود سه دوجین صدف دوطورورش افتاده بودن. هر کدوم از صدفا رو که باز کردن دیدن یه مربارید درشت و زیبا در خود نهفته داره برادرها هم که چشمشون به مرواریدا افتاد تصمیم گرفتن اونا رو برای خاستگاری شاه دخت هدیه ببرن پس از مدتی جر و بحث توافق کردن که ابتدا برادر بزرگتر سپس دومی و بعد برادر کچیکتر با مرواریدا به دربار بره و بخت خود رو بیازمایه صبح که شد بیتر مورواریده رو تو سبد کوچیک گذاشت و به طرف قصر پادشاه براه افتاد هنوز راه درازی طی نکرده بود که به پادشاه مرچه ها و پادشاه سوسکا رسید اونا با سپاه خود برای روی, روی و نبرد آماده شده بودند. پادشاه مرچه ها گفت بیا به ما کمک کن سوسکام از ما سر هستند. در عوض یه روز به دردت میخوریم پیتر گفت اصن وقت ندارم که اونو برای حل مشکل دیگران تلف کنم هرطور طور که میتونید با هم بجنگید و با گفتن این حرف اونا رو به حال خود رها کرد کمی جلوتر رفت به پیرزنی برخورد اون گفت صبح خیر مرد جوون. زود دست به کار شدی تو سبت چی داری پیتر بیدرنگ گفت خاکستر و به راه خود ادامه داد. در همون حال با خودش گفت عجب آدمای های فضولی پیدا میشن. پیرزنم پشت سرش با صدای بلند گفت باشه، حتما همینطوره که میگی. اما پسر جوان وانمود کرد که چیزی نشنیده. اون به قصر رسید. فوراً اونو نزده پادشاه بردن. پارچه روی سبدو برداشت تا مرواریدا را نشون بده. پادشاه و درباری صدا گفتند که اونا زریفترین ترین یه که تا اون زمان دیدن طوری که نمیتونن چشم از اونا برگیرن. اما ناگهان اتفاق عجیبی افتاد. مورواریده به تدریج سفیدی و درخشانی خود را از دست دادن و کاملا رنگ پریده شدن. بعد سیاه و سیاهتر. و سرانجام تبدیل به مشتی خاکستر شدند. پیتر ماتش برده و زبونش بند اومده بود. البته شاه به کنایه از خاکستر را هم تعریف کرد و آورندش را مرخص کرد. پیتر از اینکه جان سالم به در برده بود به سرعت به خونه رفت. وقتی به خونه رسید به پدر و برادراش حرفی در این باره نزد. و فقط گفت که در کارش موفق نشده روز بعد پل به راه افتاد تا بخت خودشو بیازمایه اونم سر راه به پادشاه مرچه و پادشاه سوسکا برخورد اونا با سپاهیانشون تمام شب در میدون نبرد آرایش جنگی گرفته بودند و آماده نبرد دوباره بودند. پادشاه مرچه ها گفت بیا و به ما کمک کن. ما دیروز شکست بدی خوردیم. در ازای کمکت یه روز جبران میکنیم. پل گفت برام مهم نیست که امروزم بدترین روز براتون باشه. من کار مهمتری دارم. و نمیتونم خودم و قاطی کنم. با گفتن این حرف به راهش ادامه داد و کمی بعد به همون پیرزن رسید. او گفت صبح خیر پسرم. تو سبدت چی داری؟ پل گفت خاکستر. اونم مثل برادرش بیادب و گستاخ بود و توجهی به رفتار معدبانه با دیگران نداشت. پیرزن گفت پس گفتی تو سبدت خاکستر داری. حتما همینطوره. پل نه نگاهی به اون کرد و نه پاسخی داد. اما به حرف پیرزن خیلی فکر کرد. بالاخره به قصر رو به حضور پادشاه رسید. در برابر چشمای پادشاه و درباریا به جای موروارید مشتی خاکستر تو سبت بود. پسر جوول کاری بهتر از این ندید که از دربار خارج بشه و به خونه بازگرده. اون حالی سخت گرفته بود و به برادرش گفت که تو کارش شکست خورده. روز سوم از راه رسید. تا برادر کچیکتر مرباریدارو به دربار ببره و بخت خودشو بیازمایه. اون زود بیدار شد و و خورد. دو برادرش هنوز دراز کشیده بودن. اونا سر به سرش گذاشتن و گفتن همونقدر که داره زود میره زودم بر میگرده. اونا در ادامه گفتن که خودشون با اون همه زرنگی کاری از پیش نبردن. حالا اون چطور میتونه معفق شده معلوم نیست. یسپر پاسخی نداد و مرباری داره تو سبت چی و رفت. پادشاه مرشه ها و پادشاه سوسکا دوباره سفارایی کرده و برای نبردی دیگه آماده شده بودند. از شمار سپاه مرشه ها کاسته شده بود و دیگه امیدی به پیروزی نداشتن و اون روز رو روز آخر زندگی خود میدونستن. پادشاه مرچه به یسبر گفت پسر جوان بیا و به ما کمک کن. ما واقعا داریم شکست میخوریم. روزی روزی کمکتو جبران میکنیم. کنیم. یسبر همیشه شنیده بود که مرچه موجوداتی سخت گوش هستن. اما درباره باره سوسکا حرفای خوبی نشنیده بود. اون قبول کرد که به مرچه کمک کنه. با اولین حمله صف سوسکا در هم شکسته شد، و همه پا به فرار گذاشتن اونایی که زودتر در رفتن خودشون زودتر به نزدیکترین سوراخ رسوندن و پیش از اون که پوتینای یسبر به سرشون فرود بیاد خود را نجات دادند. در ظرف چند دقیقه مرچه تمام میدون رو تو اختیار خود گرفتن پادشاه مرچه ها برای یسبر با آب و تاب سخنرانی کرد از اون تشکر کرد و قول داد هرگاه گاه دچار مشکل شد به اون کمک کنه. مرچه گفت هر وقت به من نیاز داشتی صدام کن. هر جا که باشی نزدت میام. من همیشه نزدیکتم اگه کاری از دستم بر بیاد کوتاهی نمی یسپر میخواست بخنده اما سعی کرد جدی باشه. پس گفت که این موضوع رو به خاطر میسپاره. بعد به راهش ادامه داد. سر پیچه جاده ناگهان با پیرزن روبرو شد. او گفت صبح بخیر پسرکم تو سبدت چی داری؟ یسپر جواب داد مروارید دارم به قصر میرم تا با تقویم اونا به پادشاه شاه و خستگاری کنم. اما چون فکر میکرد پیرزن زن حرفشو باور نکرده پارچه ی روی سبدو کنار زد تا پیرزن اونا رو ببینه. هیر زن گفت زیبا هستن. واقعا خیلی قشنگ هستند، اما فقط با هدیه اونا به پادشاه نمیتونی شاه رو رو آن خود کنی. برای ازدواج با شاه باید از پس انجام چند کار مهم بر بیای. راستی؟ میبینم خوراکی هم داری؟ به من میدی؟ مطمئن باش که در قصر با غذاهای حسابی از تو پذیرایی میکنن. یسپر گفت البته اصلا یادم نبود ما تمام غذاشو به پیرزن داد هنوز چند قدمی نرفته بود که پیرزن صداش کرد و گفت بیا این سوتو در ازای غذایی که به من دادی پیش خودت نگه دار. خیلی به دردت میخوره هر وقت سوت بزنی هر چیزی که گم کرده باشی یا از تو گرفته شده باشه تو یه لحظه به دست میاری یسپر به خاطر سود از اون تشکر کرد. هرچند که فکر نمی کرد وایده ای براش داشته باشه. اون براهش ادامه داد. اون وقتی رو به پادشاهی داد همه شگفت زده شدن و فریادهای های ستای شامیز از هر گوشه و کنار تالار برخاست. اما چیزی ناجورم وجود داشت. آورنده چنان مرباریدار باشکوه پسرکی ماهیگیر بود، اون دامادی نبود که پادشاه انتظارش داشت، و سین موضوع را با ملکه در میون گذاشت. ملکه گفت، نگران نباش، چنان کارای سختی به اون با گذار کن که نتونه از اهدش بر بیاد، به زودی از شهرش خلاص میشی. پادشاه گفت، حق با توه، این روزا از سرمون شلوغ بود، قرارموشکار شدم. امروز یسپر با پادشاه و ملکه و اشراف ها غذا خورد. شب رو تو بستری شکوهمند و بینظیر که حتی به خوابم نمیدید استراحت کرد. اونقدر همه چیز در نظرش تازه و بینظیر و عالی بود که لحظهای نتونست چشم به هم بذاره. از طرف دیگه مدام تو این فکر بود که چه کارایی به او واگذار میشه تا انجام بده. و آیا میتونه از اهده انجام اون کارا بر بیاد؟ با اینکه بسترش بسیار نرم بود و دلش نمیخواست از اون بیرون بیاد وقتی که صبح از راه رسید بسیار خوشحال شد. پس از صبحونه پادشاه به یسپر گفت حالا با من بیا میخوام چیزی نشونت بدم که باید انجام بدی. اون پسر جوانو به انبار برد. درست وسط انبار خیرمن بزرگی از غلات بود. پادشاه گفت اینم کارت. اینجا گندم جو، جو دستر و چاپدار قاطی هم. تا یه ساعت قبل از غروب باید اونا رو از هم سوا کنی. اگه حتی یه دونه اشتباهی قاطی بقیه شده باشه، فکر ازدواج با دخترم رو از سرت بیرون کن. در قفل گفت میکنم، تا هیچ کس نتونه داخل بشه و کمکت کنه. من سر ساعت مقرر میام تا ببینم کارتو درست انجام دادی یا نه. پادشاه بیرون رفت. یسپر نومی دانه به کوپه قلات نگاه کرد. بعد روی زمین نشست و سعی کرد دانه ها رو جدا کنه. اما خیلی زود متوجه شد که این کار یه نفر نیست. از کمکم خبری نبود. ناگهان به یاد چیزی افتاد فقط پادشاه مورچه میتونست کمکش کنه صداش کرد چند دقیقه نگذشت که مقام اول سلطنت خودشا نشون داد. یسپر همه چی براش تعریف کرد مورچه پرسید فقط همین خیلی زود این کارو برات انجام میدیم فرمان سلطنتی صادر شد در ظرف یک دقیقه یا دو دقیقه، خطی طولانی از مرچه ها به انبار سرازیر شد. اونا به دستور پادشاه مشغول کار شدن و دونه ها رو جدا تو جای خودشون کپه کردند یسپر مدتی اونا را تماشا کرد، اما با تماشای رفت و آمده پیوسته یا اون موجودات کوچیک و به علت نخابیدن در شب گذشته زود خوابش بود. وقتی بیدار شد پادشاه به انبار اومده بود. اون از اینکه دید یهپر کارشو بییکم و کاست انجام داده و فرصت کرده و گوشه چورت زده بسیار شگفت زده شد. پادشاه گفت: «چقدر عالی؟ فکر نمیکردم این کار عملی باشه. اما سختترین کارها هنوز مونده، فردا معلوم میشه. روز بعد از یسپر خواستن تا کار دیگه ای انجام بده. ابتدا اون متوجه دشواری اون نشد. شکاربان پادشاه صد خرگوش گرفته بود که قرار بود تو چمنزاری وسیع رها بشن. مراقبت روزانه از اونا به عهده یسپر گذاشته شد. پس از چروندن خرگوشا باید غروب همه اونا رو دور هم جمع میکرد و بلونه هاشون می بود. اگه حتی یکی از اونا گم میشد فکر ازدواج با شاه دختو باید از سر به در می کرد. پیش از اونکه متوجه ممکن به شکاری غیر به اونوا گذار شده، شکاربان سر کیسه رو یکی یکی باز کرد و خرگوشا رو رها کرد. صد خرگوش با تکان دمای کوچیکشون و لرزش گوشای درازشون فوراً تو های مختلف تو چمنزار دویدند. بعد پادشاه گفت خب حالا زرنگی تو به کار بنداز و از اونجا دور شد. گیج و مبهوت به دروبر خودش خیره شد. بعد به خود اومد و دید تنها کاری که میتونه بکنه اینه که دستاش رو تو جیب بکنه و برای خودش بل بچرخه. دستشو که تو جیب کرد متوجه چیزی شد. این همون سوتی بود که پیر به اون داده بود. بعد یاد حرفای پیرزن افتاد. اما تا حدودی مردد بود که آیا زور سود به صد تا خرگوش میرسه؟ اونم صد تا خرگوش صحرایی که هر کدوم به گوشه از چمنزار بزرگ گریخته بودن و اثری از اونا دیده نمیشد. خلاصه تو سود دمید و ظرف چند دقیقه سرکرله خرگوش ها از چار چمنزار جهشکنان پیدا شد. طولی نکشید که همه اونا به نزدش اومدن و دورش حلقه زدن. یسپر به زبون بیزبونی به اونا فهموند به هر جا که میخوان برن و بازیگوشی کنن. پادشاه به یکی از نگهبانا دستور داد که سری به چمنزار بزنه و مدتی یسپر رو زیر نظر بگیره. همین که پادشاه از بازگشت خرگوشا باخبر شد، بسیار متعجب و آزرده خاطر شد. اون اصلا احتمال نمیداد که یسپر تو این کار دشوار موفق بشه. پادشاه با خودش گفت: "باید کاری کنم که یکی از خرگوشا از دستش بیرون آورده بشه. نزد ملکه میرم تا ببینم چه نظری داره." اون ریز ماهریه. کمی بعد دختری با لباس کهنه و فقیرانه به چمنزار اومد. و نزد یسپر رفت دختر گفت یکی از خرگوشا رو به من بده ما چند مهمون داریم که قرار شام پیش ما بمونن و چیزی برای تهیه غذا نداریم یسپر گفت نمیتونم اونم به یه دلیل اونا مال من نیستن تازه امروز غروب باید همشون رو به قصر بازگردونم اما دختر با اینکه لباس كهنه تن داشت بسیار زیبا بود برخواسته خودش پا فشاری کرد یسپر که آدم دل بود کوتاه اومد و یکی از خرگوشا رو به اون داد دختر خرگوشو تو پیشبندش پیچید و از اونجا دور شد هنوز پاشو از شمنزار بیرون نذاشته بود که یسپر تو سود دمید و بلافاصله خرگوش از پیشبند دختر مثل یه ماهی بیرون خزید و به سرعت نزد صاحبش بازگشت. هنوز مدت زمانی نگذشته بود که خرگوش چران با مهمانی دیگه روبرو شد. این بار پیرزنی گنده با لباس روستایی نزدش اومد و تقاضا کرد خرگوشی به اون بده تا برای مهمون ناخوندش غذا درست کنه. بازم یسپر از دادن خرگوش خودداری کرد. اما پیرزن اونقدر به اون فشار و که اون کوتاه اومد و گفت بسیار خوب، یه خرگوش بهت میدم، پولم از تو نمیگیرم. اما باید روی پنجه پا دورم بچرخی به, به آسمون نگاه کنی و مثل مرغ قدقد کنی. پیرزن گفت وا، عجب کار مزخرهی میخوای انجام بدم. اگه همسایه ببینن پشت سرم چه حرفا که نخواهند زد. اونا حتما فکر میکنن که عقلم و از دست دادم. یسپر گفت هر جور میلته خودت بهتر میدونی که خرگوش می‌خوای یا نه. چاره‌ای نبود. پیر زن کاری رو که از اون خواسته شده بود انجام داد. البته خوب قدقد نمی‌کرد. نمیکرد. یسپر رضایت داد و خرگوشی رو به دستش داد. همین که اون با خرگوش از چمنزار بیرون رفت صدای سوت بلند شد و پا و گوشت راز با سرعتی باور نکرده این پسر جوان برگشت. نفر بعدی که سر راهش سبز شد یه آدم چاق بود. اون لباس مهترا رو پوشیده بود. یونیفرم سلطنتی به تن داشت و خیلی از خودش راضی بود. اون گفت پسر جوان یکی از خرگوشاتو میخوام، پولشم میدم. باید یکیو به من بدی. یسپر جواب داد بسیار خوب. یکی و با قیمت مناسب به تو میدم. فقط معلق بزن پاشنهای پاتو به هم بگوب و فریاد هورا بکش. منم خرگوشو به تو میدم. محتر سلطنتی گفت اهه دیگه چی؟ من معلق بزنم چه حرفا؟ یسپر گفت باشه هر جور میلته. من به این مفتی خرگوش به کسی نمیدم. اونا مدتی با هم بگو مگو کردن و سرانجام محتر چاق کم ورد و روی سبزه ها مرلق زد. پاشن پاهاشو محکم به هم نمیزد و درست و حسابی هورا نمیکشید و با اینکه کاراشاسپ رو به هیجان لانی خرگوش خرگوشو به اون داد. البته خیلی طول نکشید که صدای سود در اومد. و خرگوش نزد صاحبش دوید غروب شد و یسپر با صد خرگوش که دنبال شرکت میکردن به قصر بازگشت تمام ساکنان قصر در شگفتی و حیرت فرو رفتن پادشاه و ملکه و از احاله خوبی نداشتند و به هم ریخته بودن اما شاه دخت لبخندی بر لباش داشت و گوشه چشمی هم به یسپر پادشاه گفت خیلی خوب. این وظیفت رو هم خوب انجام دادی. فردا کاری کوچک برات تعیین می‌کنم. اگه از زهته اونم بر بیای، می‌تونی با شاه دخت عروسی کنی. روز بعد اعلام شد که تو تالار بزرگ قصر وظیفه جدید یسپر مشخص میشه. درباریا به تالار اومدند تا شاهد باشن. پادشاه و ملکه به تخت نشستند. شاه دخت کنارشون نشست. بزرگان و بانوان دور تا دور تالار نشسته بودند. با علامت پادشاه دو خدمتکار یه لگن بزرگ خالی به اونجا وردن و کنار تخت به زمین گذاشتن. از یسپر خواسته شد که کنارش بیسته. پادشاه گفت باید حقایقی رو بگی تا این لگن بزرگ پر بشه. تشخیص پر شدن لگن با حقایقی که میگی با منه. در غیر این صورت با شاه دخت ازدواج نخواهی کرد. یسپر پرسید حالا چطور متوجه میشیم که لگن پر شده؟ پادشاه گفت نگران نباش. هر وقت شد خودم اعلام میکنم. برای کسایی که تو تالار حضور داشتن این کار غیر منصفانه به نظر میرسید. اما هیچیک از اونا جرعت بیان اونو نداشت. یسبر باید به بهترین نفع اون کارو انجام میداد، پس شروع کرد به بیان حقایق. او گفت، دیروز موقعی که داشتم خرگوش رو می دختری با لباس از نزدم اومد و از من خواست که خرگوشی به اون بدم. خرگوش رو به اون دادم، چون که من آدم مهربون و هستم، و دلم نیومد که دختره که بیچاره و بی دست خالی برگرده. در واقع دلم به حالش سوخت. اون دختر فقیر کسی جز شاه دخت نبود. اینطور نیست شاه دخت گرامی؟ صورت شاه دخت از شرق قرمز شد و آروم و قرار از اون گرفته شد. اون هرچی و پسر جوان گفت تایید کرد. همون موقع پادشاه گفت لگن هنوز پر نشده. ادامه بده یسپر گفت پس از رفتن شاه دخت پیرزن تنومندی با لباس روستایی نزدم اومد و تقاضای خرگوش کرد من گفتم که خرگوشو به یه شرط میدم باید روی پنجه پا به چرخی و مثل مرغ قط, قط کنی پیرزن با اون هیکل تنومندش این کارو کرد و اون زن کسی جز ملکه نبود آیا حقیقت ها میگه ملکه بزرگ؟ رنگ به چهره ملکه نموند و سرخ و سفید شد. اونم نتونست کار کنه. پادشاه گفت خب اینم حرفیه اما لگن هنوز پر نشده. بعد در گوش ملکه زمزمه کرد فکر نمی کردم دست به چنین کار احمقانه ای بزنیم. ملکم زمزمه کنان گفت تو خودت چی کار کردی؟ پادشاه گفت فکر میکنی من دست به کارای مسخره میزنم؟ و خیلی سریع رو به یسپر کرد و از اون خواست که به حرفش ادامه بده. یسپر گفت پس از این دو اتفاق آدم پیر در شمنزار پیشم اومد. اون خیلی مقرور و از خود رازی بود. من گفتم که در ازای خرگوشی که میدم باید معلق بزنه پاهاشو به هم بکوبه و هورا بکشه. اونم این کارو کرد و با خرگوشی که به اون دادم بازگشت. اون آدم چاق و کسی به جز؟ همون موقع پادشاه با فریاد گفت بسه، دیگه ادامه نده، لگن پر شده. همه درباریا کف زدن و یسپه رو تشویق کردم. پادشاه و ملکه همونو به دامادی خود قبول کردند. شاه دختم از یافتن و چنان همسری بسیار شادمان و خورسند بود اون اینبار نه یک دل بلکه صد دل دل باخته یسپر شد چونکه او جوانی زیبا و باهوش بود پادشاه پیر هرگاه فرصتی به دست می آورد، به فکر فرو می رفت و تعمل می کرد سرانجام به این نتیجه رسید که اگه فرمان روایی کشورش رو به یسپر بسپره همه مردم راضی خواهند بود و آن هم گونه که خرگوشا رو خوب تیمار کرد از مردم آن سرزمینم به خوبی مراقبت خواهد کرد سفر به دنیای پر رمز و راز افسانه ها طبیعت های زیبا و ناب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 با اصف تندرو و جادویی به سرزمین های ناشناخته قصه های دیو و غول و پری رشادت‌های های قصهها قصه ها همه و همه و همه در کاناده تریکرامی هزار افسان داستان های صوتی 사인 مهران دوستی